بسم الله الرحمن الرحیم کلاس استاد حبیبی تبار السلام على سلیم دینا و نبی بالعاصم الوصفاء. اصحابنا برحسین و اولاده و اصحابه علیکم السلام و جعلنا با ایاخون من التالبین بساره من ایام منصور منتظر من آل محمد صلی الله علیه و اولیه و سلم اللہ علیه ایامی از دارگی سید شمدان سلامت الداخل و سلامه ملک و اصالت اهل بیت اطرت و تفاوت ملک و سلامه جبه خدمت همین شما عزت دارم تشکر بکنم از واسسی خیل و فرقیم حضرت ایان روزان علیه ایانا خودترین برگزاری این جلسی خاخر به ازخار از زیارت شما حضرات خوزنای بمسرم موضوع بحثی که در نظر گرفته شده در شناسی استمباط فقهی و مسائل است ارز می کنم که الارم همه تطوراتی که در فقر از اوش استماد در, در فقر اتفاق افتاده اسلوب استماد نارش محفوظ و مراقب است. تابع مرحوم امام راهیل عبدالسلام و نفس عزتگیر فکر می‌کند جوابی است. اگر می‌خواهم بگیم زویشی استم با فکر هی در نصیب مصدیسه، نه یعنی ادولا از زویشی استم با در فرق. نه بش همان بشه همون ولی گذرگانی از حضرات فقها ها در ادوار و ادوار مختلف تحولاتی رو در فقر به مناسبت هایی ایجاد کردن جناب صلاح دیلمی در قرن پنجام در المراسم همچنین در همون قرن پنجام جناب و صلاح حلبی در المحزم بعد از این مرحله بعد از یک حدتهایی در قرن نهم جناب فاضل مقدار در تنبیر خود راهی و همچنین البته جناب صاحب محظم مونه همه از شهید است از برنگلی در قواهید و بل سواهید ولی بالاخره تتوراتش در این کتاب خول و همچنین تا نوبت برسه به جناب شیخ الطائفه در مبسوط خدمت بسیار عظیمی را جناب شیخ در مبسوط به منسه ظهور رساند فقه شیعه خلاصه می شده در کتاب نهای شیعه نهای شیعه کتاب یک جلدیه با مسائلی محتصر که اجتمالی بر مسائل عقومتی ندارد وضعیت مثلاً کمروکات، صادرات، واردات، مالیات، نصب بلاد، و امصادرهایی که داربدار مدار حکومی هست. درش محسوب نیست. جهتش این است که حکومت ها در دست اهل تصنن بوده. با این امور سرداد نقشد لذا کتاب الغذایی هم که فقه ما نوشتن ما نرشتن مهوریتش قضاوت تحکیمی است نه قضاوت تعمیمی شهید در مسالک بفرماد الغذا و الازرمه. اما تحکیمیان و اما تعمیمی. منظور از قضا تعمیمی از که یه حاکمی باشد در صدر حاکم اسلامی حضورتی رو منصوب کنه که برای همه قاضی باشد به شرطی که قاضی تحکیم هوال قاضی ل. من ترازا عل قاضی عمومی نیست متخاسمانی که بر رو او ترازی کنند این در حق اونها فقط قاضی است ولی قاضی تعمیم رفتی به ترازی متخاسمین ندارد برای همه قاضی است بخواهند یا نخواهند بپسندند یا نپسندند فقه ما در کتابی مثل نهایه مشتمل بر مسائل غیر حکومی است خدمتی که جناب شیخ و به شیعه کرده است که شاید لغا شیخ هم از این جهت یلیغ و به حاله همین جهت از که نهایه تکجیدی در فقشیه تبدیل شده به مبسود با اون همه مجلد دادش چه کار کرد جناب شیخ؟ تمام سروعی که تا اون موقع احل سنت در کتاب‌های های داشتن تمام اون مسائل وارد فقه شیعه کرد بر اساسش طبق مبانی شیعه نظر شیعه را منعکسی یعنی حجم فقه شیعه یک دفعه تقریبا ده برابره آنچه که بود شد این خدمت جناب شیخ و طایفه خب به جهت کسرتش و عظمت کار مبسود درشگاهی گاهی اتفاق افتاده گاهی بین اینکه حالا یک مطلبی این قول شیعه است یا قول اهل تسنن انسان نمیتونه به وقتی که وارد میشه چون اقوال اهل سنت آمده بعد وقت نظرات شیعه مناشم من منعکس بشه گاهی که به سبوت برگزار شده ظهور در این داره که حرف شیعه هم همین است بعدن خدمتی که برعوم محقق هریدی کرده در شرایط تنقیب و به اشکالات محصول که از شرایع به فبغل قرآن یا قرآن الفقه دلید تا بسیار قویم که عمده حضرات اساطیب و مناجر در دستخار خارج متن درسیشون شرایع است. خب این تطورات مختلفی که اتفاق افتاد در طور تاریخ تشکیب نه از که یعنی از چارچوب استمباط فدهی ما خارج شده باشیم یا بعدن زحماتی که مرحومه مهن قناعینی کشیده در علم آنیت و طالب. یا در دوره محاصر فتروراتی که مرموم شهید صدر رزوان و در نظام وارگی شب متحمل و متقابل شده بسیار عرضش بنده ایش خارج از چارچوب فیل نیست دنابراین وقتی که گفته میشه که ما در باب مساعد مصدردسه خب ببینیم شیوه استنباط فکری چیه تو زن نیاد که لابد این یه شیوه استنباطی غیر از شیوه استنباط متدافید در مباعث فرمی چی نگیز؟ شیبه همون شیبه از اسلوب همون اسلوبه بلی کار برد نظر داشت نحوه به کار بردن این شیبه ها تقدم و تأخور درش ایک ملاحظاتی وجود داره این مقدمه ای اول بود که خواستم عرض بکنم که مطلب روشن باشه مقدمه دومی دو که بخواستم عرض کنم راجعه به خود مسائل مستحدث است وقتی که گفته میشه مسائل مستحدثه یعنی در گذر زمان راهی ظروف زمانی درش اتفاقاتی روخ میده موضوعاتی تولید میشود که قبلش مسبوع نبود بالاخره اگر ما مثلا در عود اقتصادی نگاه بکنیم یکی قرم شما برگردید به اقل قدیده شرکت های هرمی بوده قدیده تایم شیرینگ یا همون به زمانی بوده الان در شمال ایران مثلا هست فروردینش رو فروختن به یه نفر اردی رو فروختن به دیگری خوردادش رو به سالس تا آخر یعنی شوگه بیع زمانی یعنی یه نفر مالک فروردین یه نفر مالک اردی بهش واحده خب این پریده در مثلا یه قرم قبل متداخل نمیده که بخواد راجع بشه ها تفلقه و حرفی بزن عقد استثناء عقد آبانمان عقد بیمه اینو برگردیم به پنجه سال پیش نبوده یا قدیده ی رمز ارزها بیتکوین و سایر رمز ارزهای متداولی که امروز هست تولیدش، استخراجش، خریدش فروشش، از این قبیل قدیده بورس قدیده بورس با متفرعاتش ما همین عفضه گذشته در کمیته حقوق حوز یک به سالسط 4 برای یک فاضت اوذدی تصیل کردیم اهواام و آثار سیگنال در بورس یعنی ا کسی به خوا سالسط4 در بورس تو اقتصاد بنوه شاید همین الان بشه 20 تا موضوع رسالهسط4 از بورس بیس سیگنال در بورس این رابطه سیگنال در بورس با رابطه تلقی رکبان در فقر چه مناسبتی داره؟ یکیه یکی نیست اخواش واحده متعدده چیه؟ اینم به همین ترتیب یا تجارت های الکترونیکی که امروز باب شده خلی بروش های الکترونیکی که امروز هست این ها به چه ترتیب؟ علایه ها در بوت ازشکی از تلقیه ازنایی گرفته تا پیوند اعضا تا مرگ مغزی تا زندگی نباتی تا اجاره رحم تا تغییر جنسیت در پدیده دجندرسه چنچ یا همون پرگیر ما نه تا دکتری تا حالا موجود دادیم در زبایی ریزش خب اینا موضوعات و نهپد قبلا بشر قادر نبوده اقدام کنه تحت عنوان تنگیز جنسیت که خب حالاً حکمش معلوم بشه ولی امروز هست شبیه سازی یا عدیده سرمازیستی همون فریز کردن انسان هایی که مبتلا به بیماری هایی که لاعلاجه و که در آینده امکان و معالجهی فراهم میشن و همسال اینها در ابعاد پزشکی. در بود سیاسی رهبری شورایی برث اختیارات مراجع تقلید همزمان با بسته یت ولی امر و مباعث مشابه و اون در مسائل سیاسی، تشکیل اعضا، تفکیک قوا و همچنین، موضوع انتخابات که در فقه سیاسی مطرح هست اینا باز از پریده که خب مذبوب نیست بله مرموع ناینی در عنیت تالیم که فرعی رو در اونجا دارن ولی بحث به که موضوع انتخابات ابروز نیست حتی الان یه رساله ای دفاع شده در سطح چهار مبنی بر امکان بررسی امکان برگزاری انتخابات برای انتخاب و بزات. آی فقه اسلامی اجاز می اجازه میده؟ اجازه خب اینا هم که لازمی فرمایید مطالب نوپدی دن در وقت قضایی قضاوت شورایی تعدد مراحل دادرسی اضافت بانوان حق اعتراض به احکام تفکیک مراحل دادرسی تشکیل نهاد دادسرا وجود مدهی العموم و قرارهای تعمیر کیفری ادله اثبات جدیدی که امروز بر اساس پیشرفت علم به وجود آمده مثلا برای اصفات نصف آزمایشات DNA ایت هم از سکت میکنن وضعیت اینا در مسائل جزائی آیا امکان جرمگواری در حد مجازات اعدام برای حاکم اسلامی وجود داره؟ یا وجود نمید الان این پریدهی ای مواد مخدری که هست در قوانین ما برای باشا مواد مخدر مجازات ایدام گذاشتن منطبع باشی در شکریه محاربه که نیست کنیس. که نیست اگر کسی مثلا یه نوبت انجام داده باشه که مطابق عنوان افساد فیل عرض فی و یسعون فیل عرض فسادان نیست دانش؟ ادامه شد از چه بابی جهتش چیه ایسیت این کبیری مسائلی که مسائل نوفدی الان در قانون مجالات اسلامی ما یه اصل داریم هر تنوان رشد کیفری اینجای ای کار داره اونایی که میخوانده ساله بلیسن پایدنان بلیسن کم هم کار شد این رشد کیفری جایگاش در فقر چیه یعنی چی در فقر میگن دختر 9 سال به بالا و پسر کونزه سال به بالا کمری باده یه مسئولی کیفری داره قانون الان بگه نه الان بر بلو باید رشد کیفری داشته باشه تا مجازات بشه رشته گیفری چی؟ رضا مثلا میبینی طرف کنی شونزه سالشی کاری کرده گفتن دلوازه سالشی کاری کرده یعنی این فاقد رشته گیفریه بنابراین مجازات نمیشه در همه این ابوابی که اشاره کردیم و نکردیم ما مسائل مستحدثه داریم مسائل مستحدثه پس یعنی چی؟ یعنی اون مسائلی که بر اثر ظرف زمان ترقی ایل تطورات دانشه های بنیادینی که حدید آمدن به موضوع تبدیل شدن قبلا چین موضوعاتی نبوده که فقه و حدراج رو نظر میدن حالا الان ما هستیم این موضوعات جدید بخوایم حکم اینها رو به دست خب حالا در این ارتباطی که با, با این دو مقدمه موضوع بحثمون دروشن شد در استبباطی این مسئله مستحدثه از جهتش ایوه ای افتا ما به نظر اون که اگر فقیه به خواد به نحوه قضیه یه حقیقی فتوا بده هیچ مشکلی رو از جامعه اسلامی مرتفق شیوه افتاد ژورره گاهی افتاد بر سبیل قضیه حقیقی است گاهی نه افتاد بر سبیل قضیه خارجی است حالا من؟ مثالی بزنم براتون که این روشن بشه مثلا در همین فلیده بیرکل استفتائات فرابانی شد از حضرات مراجع چیا خرید فروش تولید این به اصطلاح بیت کوین یا ارزهای مشابه رمزارزهای عرض مشابه و سمن قرار گرفتن یا مصمن قرار گرفتن،شون چوک می‌داره. می داره اینجور جواب می ده اگر رمز از عروفن دارای ارزش مالی باشد خرید و فروش با آن بلا مانه هست اینه شو می افتا بر چه نحوی ها؟ قضیه حقیقیه شی قضیه حقیقیه یعنی فرضیه یعنی اگر فعل چنین باشد به فرضی که حقیقتش این باشد حکم شطرنج بازی چیه یه وقتی میگیم شطرنج حرام است این فتحه بر وصف حقیقت خارجی است ولی یک وقت شما میگیم اگر شطرنج وسیله ورزش فکری باشد و از عنوان ابزار قمار خارج شده باشد آزیبان با آن به لامان هست این میشه فتح بشه نحوی قضیه حقیقیه یا قضیه فرضیگه افتاع بر نحوه قضیه فرضیگه یا حقیقیه شامعه را در حاله از ابحام فرو می تکلیف روشن بالاخره چه پار اون جگ درست کرده بودن یه وقتی بعضی از نظر دادن که خوردن ماهی عزمبرون حلاله رو جهت این که تحقیقات جانوری خروجیش شد که این ماهی فلس داره حالا ولو فلس های ریزی که با چشم غیر دیده نمشی بعد کلیپ درست کرده بودم که بله تو جهنم به بعضی از ها افتار کردن که دیگه از این وقت برخزی به بهشت چرا بگنه ازان برام کرده بودن حالا الان دیگه فتفا دادن حلال شده بشه گذار در بید تو برشت خب این از جنبه مزاهش گذشته ناشیه از چیه؟ ناشیه از اینه که فتفای قبلی بر مبنای قذینگه یه حقیقیه بوده یعنی اگر اگر فلس ندارد حرام دایی گفته میشه که اصولا تشخیص حکم به اهده فقیه و تشخیص موضوع به اهده فقیه نیست این ساختمان سال هفته که افتتاح شد به عنوان مرکز تخصصی قضای عوضه های مختدایی محسسش بود دو اولین دورهش دوری سطح چار ما سال 75 اونجا به سطح اولین دوره سطح چاره چار حساسی غذا تدریس داشتیم من نوارای ما و نوارای های مختدایی دیگران که تدریس میکردن زرد کرده بودن و از که او سطحش و صداش اشتداش خلان میشد حالا سبزی فروش که خوب که کنیم بچه های فوتبال به هم فوشایی ناجون بودن بعد طلب ها میگفتن اما اینا چی ما بسطه درس ها خیلی بسید دره علایه ها از اگر چنانچه فقیق به خواد فتحا بده به نحوه قضیگه حقیقه آیا باید بگیم خوابا موضوع به فرقه چه مر بود موضوع شماسی عرفیه تشخیص و عرف هر چه میخواد باشه همانه دیگه بله درسته که قریری این مطلب فل جمله نه بل جمله فل جمله درسته یعنی بعضی از موضوعات هست که تشخیصش با فرقه نه هواستون باشه ها وقت خیال نکنید علل اطلاق تشخیص موضوعات با عرف است تشخیص و حکم با فقیه نه یه جاهای تشخیص موضوع هم با فقیه هست مثلا فرض کنید در قضیه استحلال در قضیه استحلال سم رویه و افتر لرؤیه درست شد؟ حالی یک میاد میگه آقا من خودم ما تازم دیدم میگه من دیگه با فنگی چیکار کار دارم معروفه که یه آقایی آمد گفته بودن به محضر فرقم آیتون لازم های برو جدیر اسبالالله که آقا این میگه من ما خود دیدی روز دانش خدمت آقا آقا خاطر خاطرجام هستی ما دیدی آقا فرمود یعنی خاطر خاطرجام هستی که من برو جدی اگر به شما بگم نه خیر امروز روزه بگیر نگیری بابا آقا شما که سالی دیگه خدا خودش میگه دیگه من نمیگم خب بله حالا یه وقت که موضوع اینجوریه سمل رویه و افترگ رویه اما یه وقت که شما میخواهی بگه خب حالا من میخوام با دوربین رویت کنم اینم داخل در موضوعه اینکه که رؤیت کرد رؤیت شدن ماه موضوعه ولی رؤیت شدن با چشم مسلح یا غیر مسلح این موضوعی است که باید فقیه شرط بزنه. وجه که به عرف قانع یعنی تشخیص عرفی موضوعات چه جمله به عهده عرف است. ن بلجمله به احده ارفه است یه جوایی هست که مداخله باید مداخله یه فقهی باشه اگر به اصلاح به اعداء دین چه حکمی و خب صلاح ملاقش الان حرمت به یه صلاح اما این که سلاح چیه که ما بفروشیم پنجه بکس که استادر کنیم حرامه چاقوچه تو حرامه الاخره بخشی از مسادقه هست که تشخیصش برای ارتوی غرفه بخشی از موضوعات هست که اینا بازگشتش به استناد و حکم است. در همون موضوع هم باید فقید نظر حالا از این جهت گذشته در مسائل مستحدث دست اورف از موضوع شناسی کوتاه دقت کنید مخصوصا کسانی از فقه ها که فرمایششون اینه که مرجع عرف در ما نحنفی عرف عام است که میگن مرجع عرف عامه در حقیقت با این مسئله ما مواجه میشیم که اگر غرف عام ملاک باشه غرف عام جور بعضی از چیزها رو تشکیز بده یعنی شما الان در این پدیده هایی که من اسم بردم عقد آبونمان عقد استثنام مثلا غرف عام چی بگه تو پدیده تغییر جنسیت غرف آم شوی اضاوت بگنه یعنی در حقیقت در مسائل مستحدثه ما گاهی با واجه با این وضعیت هستیم که غرف مشکل به تشخیص برسه لذا مقام معظم رحبری حفظه والله دستور تشکیل محسسه موضوع شناسی فقی داره واقعا فقیح اگر موضوع رو ندانه همین الان الان که من خاش صحبت دارم هنوز شرکت های حیرمی موضوع شناسیش معلوم نیست. برای خواست معلوم هنوز بورس موضوع شناسی خیلی معلوم نیست، برای خواست معلوم نیست. توده معلوم مردم عرف مردم چی بود. چی موضوع شناسی بود. خوکم باید مترتب در موضوع باشه. شما اگر حالا بگید به نهر قضیه حقیقیه بگی، اگر بورس چنین باشد خوکمش چنانست. اگر شرکت هرمی این چنین باشد و حکمهش است. اگر تنهیر جنس نمیخوام بگم این دقت کنید ها. ما نسبت به همه هزرات بزرگانمون فقه و مراجع عظیمالقدر و عظیمالشنمون که به نحو قضیه حقیقی فتوا میدن احترام قاهلیم و فرمایششون خارج از شارچه و اسطوب فقی نیست اسطوب فقی همینه ولی وقتی فقیه داره اینجوری نظر میده معنی اینه که موضوع براش روشن نشد بله جامعه هم که روشن نشده نتیجهش خروجشی سردرگومی من هم کلف چه بار بکنم فقیه هم که موضوع نشد من هم که موضوع نشد لذا به نظر میمسه که در مسائل مستحدثه اولا موضوع شناسی از اهمیت بسیار بلای برداره خوشبختانه من دیدم دفتر بعض زذرات مراجع در اوم اونا اقدام کردن به تشکیل یک تیمه های موضو شناس خریم پریده های نوعی که به وجود میاد اولا ما بفهمیم که این چیه تا بتونیم رابطه بهش حرف بزنیم و ایلا فتحای بر نحو قضیه حقیقه با ادم الفتحات از حیث کار برد تفاوت زیاد نیم وقتی که موضوع مجبور شد هم فقی موضوع شنازی نکرده هم برای عرف معلوم نیست چه دردی از جامعه دوامه چه مشکلی رو از مشاکل ما حل می دونم خب نمی دونم من باید ساعت ده تمام کنم مم. یا هرچی تخیر روزه به حساب ما نیست چجوریه بله خده بود بسیار خب با توجه به که فرصت زیادی نداریم راجب بایسته هایی که دخیلی در روش شناسی موضوعات مستحدثه هستند پس یک مسئله موضوع شناسی در مرحله اول اما خود فرحی بداند کسا راجعه به چی میخواد او اگزاده کنه تا نوبت به افتاع بعد نحوه به اسطلاح قضیه حقیقی نوبت بینین نخواد برسه بتونه به نحوه قضیه خارجیه تعیین تکلیف کنه اما از این جهت گذشته باست در این از که در هر موضوعی در هر مسئله ای که ما میخوام استنباد کنیم اول باید بینیم که اصل در مسئله چیه، اصل در مسئله چی اگر موضوع مستاق، شبهه تحریمی گست خوب از حالت و از حالت الو جواز و از حالت البرائه ما باید برای اثبات و حرمتش دنبال در این گشت اگر میستان شبهه وجوبی گس به همین ترتیب ازالت برای هست باید کسی که میخواد بگه واجه بست دنبال دلیل بگرده. فرش کنید در همین موضوع تغییر جنسیت تغییر جنسیت جز یا نیست تصففانه یک حدیده. فرار شده ادراک می تونه مشهد قوت به تغییر جنسیت در خوابه میونهس خب حالا این الان تکلیفش چیه من فتح های مرغوم امام رو که نگاه میکردم استنباتم بس که ایشون به نحر قضیه حقیقی فتح بادارن. یعنی اگر تغییر جنسیت روخ میدهد شون فرموده مستاق شبه تحریمی است از حالت برای جاریه کسی که مخواد بگه حرامه باید دلیل بیاره بعدیشون دلائلی که بگه حرمت شدن رو رد کردن ولی مبتنی بر چیه؟ اگر اگر تغییر جنسیت رخ میدهد حالا تغییر جنسیت رخ میدهد یا این اشتی که خارجی هست ما در این کمیته مرکز تحقیقات فقیقی مجلس شورای اسلامی که اصولیت کمیته به خانوادهش با من بوده ترانسکشوال هایی که ترهیر جنسییت دادن ارده باشه حضوری مساحبه کرد بعد یه کیسش جالب بود مردی که زن شده زنی که مرد شده بس پس این دوتا با هم ازدواج کردن اینا رو مردیم باشون حضوری مصاحبه کردند در اون جلسه بنده بودم صدیق محترم ما آیتولای علی بوست بود دیگران بودن مصاحبه کردیم باشون به خانمی که آقا شده گفته شما هران آقا شدی؟ خانم هم میتونی چیمه هم یعنی قدرت برد نو و شبیه حالت تناسلی پسر ساله که از معایشه کشاله ران جدا کردن اون عضو اونجا متصل کردن پیمند زدن در ناهیه شرگاه زنانه ای که صورتش رو تبدیل کردن با جدرای پلاستیک نه نوعوزی داره نمیشه خب شما پس الان ازدواج کردی ای چهار بکنی؟ گفت من از کمروند دیم سی استفاده کنار دست من یه حال بود از شاگردان های خوییه هیر مرده شخصیت پهترم و صاحب تعلیمات اما دیگه منده خدای که جنین نبود مرض غندم داره ظاهرن منده خدا یه حضر دیگه اونم به سن جنسی رسیده بود به من درگوشم که این کمربندی جنسی چیه به درد ما میرده؟ <تص> نه آقا این به درد شما نمیخوره خب اینکه شما یه کمر پلاستیکی ببندی به کمر یک نمیدم آلت ملدانه پلاستیکی هم ملحق شده باشه اونجا اون بخواد نقشش رو از رای فار کنه آیا واقعا تغییر سنسیت رو اختاده اینجوری مصداق صدقش چیه غرف آمن غرف خاصه چیه؟ خب والا در هشورت پس خنابر این این که ما بیایم به نحوه قضیه حقیقیه بگیم تنگیل جنسیت چی و اجازه تنگیل جنسیت ممنوعه اگر مثلا فلان باشه کذا اگر فلان باشه کذا این برای تکلیفیه تکلیف و تحقیقاتی که ما داشتیم در این مسئله به نظر ما تغییر جنسیت رو نمیدهد اون چیزی که داره اتفاق میفته سعی در تطویق جنسیت و الا این که زمین رو رحمش رو در بیارن سینه رو کنسل کنن یه تیکی از کشاله رانش رو بردارن جای دیگهش پیمند کنن الان ما در تهران قابل توجه شما رئیس منطرم دادگاه خانواده تهران در گزارشی بود چون ما استاد آموزش ضمن خدمت و و استاد پروازی رو قضایی هم هستیم اما این آما رو به ما منعکس میکنن گاهی گفت ما الان در تیران چندی پرونده داریم که طرف ازدهاش کرده الان اومده توازای اعلام وطنانش کرده چرا؟ یه کیسش اینه طرف ازدهاش کرده رفتی توی این سابتمال های چند ترون هست ها بر رفته بوده این داشتن از پله ها میبادن پایین یه نفر از پله داشته میباده بالا خانومان نگاه کرده بهش گفته حسین تو اینجا چی کار میکنی؟ حسین شوبرش کش کفته حسین که یه یه کتا خودش داره میگه دید نه خطابش میگه خانه میشه مردو گرمه کتا خبر نداریم این برونی هم کلاسی ما برونی حسین آقا حمل کرده آره شده خانم بالا گره این رفته دردار خانماده شکایت کرده الان اعلامه انفساف نکاح خواسته چرا؟ این آقای که الان رفته تقاضای انفساف نکاح رو خواسته اعلام انحلال نکاح رو خواسته وجهت اینه که این که جز عرف مردم است نمی که مردی با عمد جراحی فیل واقع تبدیل به زن واقعی بشن اگه باورداش که میشود که نیمیده که زن دیگه همه میگه این زن نیست به هر صورت یه مسئله اینه که ما موضوع رو معلوم کنیم بالاخر به نمو قضیه حقیقی مشکل حل نمیشیم بخش بعدیشی که ما بخوابیم مستاق چی شبهه که؟ مستاق شبهه تحریمی است چرا؟ مجرد این که خب افلا ما قاعده حرمت ازرار به نفسو داریم نه لازره را بعضی این دوتا رو اشتباه میکنن هم قاعده یه را و لازره ناظر به جایی از که شما ضرر به دیگری بزنید قاعده قرمت اضراره به نفس این است که شما خود ضرر بشن در وسالشی نگاه کنید ما و قرمت عکل تیم یا آیات زیادی دن میگه گل نواد بخوری پرامد چرا؟ میگه بشن. پر بدن سرار شمار نداری زرار به بدنیت بزنی مرد بره تن بده به عمل جرایی بیان حالات رجلویتش رو ببورن چایز نیست به سطابه چیه؟ حرمت ازرار به نفس خوب، مستلزم عقیم سازی است عقیم میشه کسی که رفت تغییر جنسیت داد این که تغییر جنسیت داد زن شد یا زن بوده مرد شد هرگز دیگه بچه داره بیشه اگر کسی انفه علشق سنچه اند و عملا یستلزم زم و اوق و مهو حرام استرزاول اوق حرام داره عادل نیست خب مساق شبهه تحریمی است در شبهه تحریمی اصل چیه قرار کی باید دلیل بیاره اون کی میگه حرام است خب اونایی که میگن حرام است تلاوی لقمه کردن مرحوم شیخ قنالو استاد مرحوم تبریزی رضوان که این مساق تبدیل خلق الله هم هست که در آیه شریفه هست که رسوله تبدیل خلق الله بخلایو غیرون خلق الله که از به اصطلاح وست بس وست وست وست شیطان معرفی شده در آیه شریفه قرار اصطاق تغییر خلق الله و علال اطلاقشون حرام میدانه صدا حرف نظر از بحیه جواب و هر صورت الاخره از حیث زرش زعوش. زرش اینی که ما اول باید ببینیم اصل در مسئله چیه چی باید اقامه دلیل کنه اینه باید اقامه دلیل کنه این خیلی مسئله کلیدی ها شما در هر مسئلهی برای استنباد اینو باید باید توجه قرار بیدید به خاطره نمیم از مرحوم آیت الله بدنی کارشانی صاحب کتاب تاریخ الحج للفحا و الحجج در وقتی که مراشعه بزرگ می خون بود به ساکن کاشان بودش اون زمان فقیه متفردی بود که می فرود ریش تراشی حلاله فتوا ها ریش تراشی حلال خب ما اون سال رفته بودیم کاشان تبلیغ و چند سال بود دفتیم دیدن ایشون آره یه بزرگان هم نشسته بودن ما یه بچه طلبه به خطاب بهشون ایشون ارز کردیم آقا فرمود این چه فتواهیه شما تایید اشتراجی حلاله ایشون یه نگاهی کرد و دید من یه بچهی رو نشسته و یه نگاه آقلا در صفی کرد و از فرمود که بسن جن این شبهه شبهه تحریمیه است yes. من باید دلیل بیارم که چرا حلاله که شما باید دلیل بیاری؟ چرا حرامه؟ شما باید تحریمی شما اول باید نگاه کنید مسئله مثلاق چیه؟ اگر مثلاق شبهی تحظیمیه است برای حرمتی شو باید دلیل قامی کرده والله حلاله مثلاق شبهی قجوبیه است برای قجوبش باید دلیل والله اسفرهاست از اسالتانی برااست هست تکلیف ندارد از بنابرای این این تکلیف باید اول روشن حالا که روشن شد چون وقت بزشتی من این رو فقط میشورم شمورم تفصیلش اگر شما عمری بود و فرصتی بود در وقتهای دیگر وقت تکلیفی این جهت روشن شد بعد باید بعد بریم طبق روشی سنت استماعات همپنا سراغ علیه لفظی بود ظهورات کتاب ظهورات لسانه یا نصوص روایی یا ظهوراتی که در دوایات هست در سنت هست اونا رو تکتف شد روشک اگر چیزی داریم اونا تمثل اگر نبود حدلی لبیه بیلیم بالاخره دلیل عقلی هست سیره و قضایی هست حالا به نظر ما وازگشت اجماع به همون سنت هست به هر صورت اگر ما اسلوب اشتهادی را بخواییم به کار ببریم در مسئول مستحدثه مرادمون این نیست که ما میخوایم که فکر جدیدی تحسیز کنیم حرق نوعی بزنیم که دیگران نزدن اون فرمایشی که مرمون نایینی داره یه مقاله ای ما نوشتیم اخیلا شده بعد نیست رفاقا مراجعه کنم خیلی کاروردیه مقاله توسیع و نتاخ قاعدت نفع الحرج الال احکام الادمیه عنوان مقال عربی توسیع و دادن نتاخ ده. قاعدت نقفی الحرج الال احکام العدنیه این در علمان حجب الفقهی ار رومای شاهرودی چاپ شد کلام در اینه که مثلا فرض میداره قاعدت نقفی حرج قلمهش کجاست؟ مرحوم ناینی استدلال فرمده که قلمهش فقط مسکتات احکام یعنی اگر در شریعت که جایی افعال داریم لا تفعل داریم نفی هرچ اون حکم برداره اما اگر جایی در شریعت حکم نیست اینجا کلم روی نفی نیست ما در این مقاله آورده که نه اجود بدشون استدلال کرده و ایلا للزم تحسیس و فقه جدید یعنی اگه ما بگیم قاضی نفی عراج در مصفتات و اکرام همه هست جدید لازم میاد. اصلا آیا زنی که در شدت گرفتاری و بدبختی با و عراج هست بسیش عراجی هست میشه حاکم طلاقش بده یا نمیشه طلاقش بده؟ ما هیچ حرفی در شریعت به این نداریم نه در قرآن چیزی داریم نه در دویا چیزی داریم هیچ؟ میشه بگیم خواهده نفیه رجی اینجاره میگیره و ها میتونه طلاق بده نرامون های نمیگه افنا چرا؟ یه قلم رو خواهده نفیه رجی مصفتاته قدم یاد نیست این که در شریعت افعال و راز افعال نداره که شما بخواییم اونجا دخیلش کنیم ولی ما بر اساس اولین فقیهی که تفقیه کرده که قاعده نفتی هرش به هدمیات احکام تصدقی دارد مرموم صاحب او است در اون زید مرموم, سنگید. مرموم سنگید در اروبه ما اونجا در اون محالم نوشتیم آیا اینکه محروم سید می فرماید حاکم می تواند زنی را که در عصر حراج از به جهت عصر حراج طلاق بده از سید از سس فکر هن جدید ها یعنی در همی فکر از سید ملاتر کی بیگه؟ فکر خود اون رو می گه چرا مذاقش هاره که ما جعل علیکم فی الدین من حراج یعنی هیچ جایی دید که گفته فقط در مصفت های هیچ جایی دینه نیست الان یه اگر فتفا فرمی کنه مسئله فرمی کنه اوک فرمی کنه ما تحسیل جدید نداره اسلوب جدید نداریم بلکه فهم جدید با شرایط جدید از عدلهی که داریم همان اسلوب تغییر نمی کنه موضوع باید شناخده بشه اسلوب ها باید بازنگری بشه دقیقت بشه توسعه ادله با دیده بشه قلم فهم بشه تا ما بتوانیم احنا را بهش آنشانان که باز شد دسترسی دیده خب وقت من گذشتار سوالاتی هم رسیده بعد. به فرقودن اجتحاد شورایی چه حکمی داره مثل مسئله استحلال خب مسئله استهلال مستظر هستید که اگر دوره بستید حاکم شرعی یعنی ولی فقیه مبسوط و باشه با فرض حکم به قلول ماه نوبت به نظرات مراجع نمی رستن. و این یک کار است که گاهی این جا اتفاق می افته. البته اگر علیه هم حکم کرده باشد ولی خواهی حکم نکرده باشد اون یعنی بحث دیگر ایست. ولی در نظام حکومتی اسلام به فرض حکم علیه هم محبت به نظر دیگران نمی آیا فقید در موضوع شناسی به صورت شخصی ورود کرده و موضوع رو شخصا تنقیه کنند یا از باب رو جو برده و کارشناسان شناخت موضوع را به با آنان واگذار کنند راه طبوع مشکالش این است که در بسیاری از موضوعات موضوع برای خود ارده که نموشن خست نیست یا بین کارشناسان تعارض آراب وجود دارد خب ببینید الان یه روشی که در وضعی درس های خارج دایر شده در در موضوعاتی که نیاز به کارشناسی داره از یک کارشناس موسطی در وضع بکنم یاد تو جرس درس خارج میشیر کنار استاد موضوع رو تنقیم عباد موضوع رو میگه خیلی مهمه مثلا موضوع افرد شنافته بشه چیه بسیار مهمه انتها طبعا یه مشتهل مطلق با تکسر موضوعاتی که الان هست انتظاری نیست که شخصا بتونه در تمام این موضوعات خودش نظر تحسسی پیدا لذا ایرجای به خبره و کارشناس یک امر طبیعی و اون تا که داره طبعا باید کارشناس اگر مبنای فقیه است که کارشناس باید نزوجیتش از باب بیانه است باید آدل باشند و طبق مبنا قول عدل و عدلینه خود دو نفر حد باشند و کارشناس اما اگر نه، فرقیم نظرش این باشد که نظر کارشناس از باب به خبرمیت محتبر از کافی وساقت باشد. وساقت یعنی چی؟ وساقت این هم شما اون رو کارشناس بدانی، هم بدانی که او در پاسخ نظر کارش کاسیش وجدان کاری دارد. وجدان کاری دارد. متاسفانه ما مشکلی کلا در دستور غذایی داریم در مسائل کارشناسی ها گاهی بی وجدانی در کارشناسی کارش وارد است رفت صحنه تصادف و دیده اومده گزارش کرده خط ترمز مثلا 15 متر نمیشه 5 متر نتیجه ای که کی مقصره با این گزارش علام میشه کارشناس هست وجدان کاری نداره این تفاوتش با اون باب اول اینه که این کارجناز دوباره ممکنه که همین که ویشنامه کاری داره ممکنه که نماز را نخونه ولی قولیش برای شما معتبره وقتی ویساقت لازمه قولیش برای شما معتبره اینجا اما اگه این گفتیم بابش باب بینگه هست باید شرایط باشه تا معتبر باشه ویلا اعتبار اینه. خب سلامون علیه علیه خب سلام که توسط فقهایی هایی که موضوع شناسی نکرده برای مغلط ات برای ما که به این مسئله واقع هستیم لازم و است ببینید فتحا شما شما باید ببینید بخش است اگر به نوع قضیه حقیقیه است تشخیص موضوع شما خلافه اصلا در حق شما فتوا نیست. فرض کنید فقیح گفته اگر عزمبرون دارای فلس نباشد خوردنش حرام است. شما رابطه ما عزمبرون می گرفتید میتوسکوپو می آوردید چه درطی روش میبینی فلس دارد. دیگه او در حق شما فتوا نداره تا شما بخواید مخالفت کنید. در چی شو؟ بنابراین اگر تشخیص شما اینه که ولی یه وقتی که فتوا به قضیه خارجی است اگر فتوا به نهم قضیه خارجی باشه قاعدتاً باید قاعد برای شما علم به خلاف بودن تشخیص موضوع حاصل بشه یعنی این معناش اینه که فقیهی که فتفال داده موضوع رو با یه خبره کارشناسی بررسید کرده به نتیجه رسیده این که اون نظر ما شما بخواهی نه و باطل است و بگی موضوع چیز دیگری است این معونه زیاد میبره و به جوری باشه که شما واقعا علم بر خلاف اون تشخیص پیدا کنید و الا همونی که هست به اسطلاح فرمودن از نظر حضرت آقا خرید و فروش اینترنتی ارز دیجیتالی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است. بعد این این از کدام دسته است؟ آیا از دسته حقیقی است یا از دسته خارجی است؟ آقا نفر بودن فی حد نفسه عرض دیجیتال معاملاتش جایز یا جایز نیست ببینید شما اصلا به عرض دیجیتال کار نداشته باشه شما پارچه بخوایی از پاکستان وارد ایران کنیم بجازی یا بجاز نیست خرید گروش پارچه رو که فرقی بفتر اشکال داره اصل مسئله که نداره که اما همین از مقام معظم ره به برزی چی جواب میده؟ بر اساس اون این این حجم رایج به اصل مطلب و معنا نیست بلکه معناش اینه که فی حد نفسه مجاز اما اگر گفتن استخراج بیت کوین بدون مجوز ممنوعه پس شما که مجوز نداری حرام است کسی می میونه که واردات کنه از خارج از کشور گندم بیاره شکر بیاره ولی بدون مجوز بیاری شوک میدات ایشون میفرد حلال البته همین فوقه ها اینجور نیستن از اصفاقه ها معاملاتی که فی نفس حلاله ولی خلاف مقررات هست و سمنش را صحب نمیدانن میگن حالا آره اون که تخلیف کرده از مقردرات گناه کرده استقفالی معاملات سعی میدانن اجاعت این که میگن اصلا هر قرمت تکلیفی مستلزم بطلان وضعی نمیشون ولی خب بعضی از فقایدگم در مقابل میگن نه درست نیست از جمله بخواه معظم ره داری این که ایشون بفرماید در قضیه معاملات با بیتکوین و اینها رعایت با قرارات جمهوری اصلابی لازم هست معناش فتخا راجع به عدم جواز اصل مسئله نیست میخوان بفرماید که اصل مسئله ولو مجاز، پاید در قالب مقررات جمهوری اسلامی باشد از شما بریم برخیر مجاز استحصال کنی دستگاه بزنی کوین تولید کنی اون جایز نیست ولو این عمل فی حد نفسه جایز میشه خب داخلن سوالاتم تبار شد خیلی خوشحال شدیم از اینکه در خدمت شما چهره های نورانی خوزند های گرامی عزه بودیم چه دوستانی که در این جلس در محضرشون هستیم چه کسانیم در فضای مجلزی و خاطر ما در این برنامه قرار داشتن و از تصدیقی که فراهم شد از خواهی میکنم و الحمداد <مزدار> دایر رفتنا <مزدار> برای شما به بحث اللهو چیز به نظر شما ارزش و این که بده